در نام خداوند و ناجی ما، نیسای مسیح به شما سلام می‌کنیم و مقدم شما رو به دانشکده کوچک کتاب مقدس خیر مقدم گیم. حقیقت اینه که اکثر ما یه موقعی در مورد قیافه یا موفقیتمون مغرور شدیم. چرا ما این کارو کنیم؟ چون ما تایید دیگران رو می‌خوایم. در این بخش از مطالعمون در مورد معجزه‌ی شهر معلم ما کمک خواهد کرد در که بهتری از تعالیم عیسی مسیح در انجام دادن کارهایی که از انسان پاداش میگیره داشته باشیم و کارها رو طوری انجام بدیم که خدا انجام میده تا اینکه از پدر آسمانیمون پاداش بگیریم. به درس امروز با دقت گوش کنین چون خداوند چیزهای بیشتری داری که میخواد به من و شما تعلیم بده تا بتونیم برای شاگردی او جد و جهد کنیم. زنهار ادالت خود را پیش مردم به جامعه آورید تا شما را ببینند و نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، چنانکه که ریاکاران در کنایست و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتن، بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می مطلع نشود تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا عجر خواهد داد و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایز و گوشه های کوچه ها نماز گذارند تا مردم مردمیشان را ببینند هر آینه به شما میگویم آنها اجر خود را تحصیل نمودند لکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نمو و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد در حالی که این تعلیم باشکوه رو که موعظه سر کوه نام داره بررسی می کنیم، چهار آیه از متا باب 6 رو براتون خوندم. تردیدی نیست که این آیات ما رو به قسمت جدیدی از تعلیم می‌رسونه. به همین خاطره که ها در اینجا از هم جدا میشن. در باب پنج شاید بگویید که تعلیم عیسی ما را واداش که به درون خود نگاه کنیم. خوشا به به ما میگن که عمق‌های قلب خود رو نگاه کنیم و ببینیم که آیا خدا واقعا موجزات خود را در قلب ما انجام داده یا نه؟ اگر موجزه تولد تازه در حقیقت در درون ما اتفاق افتاده، دیدگاه‌های تازه‌ای بر ما مکشوف میشه، مانند دیدگاهی که عیسی در قسمت اول باب پنج برای ما به تصویر کشید. ما این دیدگاه‌ها رو در قلب خدا می‌یابیم. می‌بینیم که همینطور رشد می‌کنند و پیشرفت می‌کنند. این دیدگاه‌ها به طور کامل در قلب ما نخواهند بود. و یا اینکه ما کامل نخواهیم بود بلکه به گونه ای می توان گفت که ما این دیدگاه ها رو در خود می بینیم و میخواهیم که این دیدگاه ها در ما رشد کنند پس حال ها به ما میگویند که به درون خود نگاه کنیم اما سپس ادامه متاباب به پنج به ما میگه که به اطراف خود نگاه کنیم چگونه این دیدگاه های زیبا رو به برادر خود دشمن خود زن یا همسر خود انتقال بدید؟ چگونه این دیدگاهها رو، به اشخاص شریر یا همسایه و یا دشمن خود انتقال میدید این اساره قسمت اعظم متا باب 5 به اطراف نگاه کنید و به کار ببندید پس از اینکه به درون نگاه کردید و فهمیدید که در اعماق قلبتون معجزه‌ای رخ داده در درونتون این باعث میشه که با همکاری با کسی که این معجزه را انجام داده بخواهید که این دیدگاه در شما رشد کنه و توسعه پیدا کنه همین که این موضوع رو بفهمید با فیض خدا واقعیت تولد تازه رو در خود داری مدام دوست دارید به اطراف خود نگاه کنید و از خود بپرسید که چگونه این معجزه با افراد زندگیتون ارتباط پیدا میکنه چگونه این دیدگاه با دنیایی که خود رو در اون میبینید ارتباط پیدا میکنه وقتی عیسی میگه که ارتباطات ما باید چگونه باشه اگر با فیض خدا وقتی به درون نگاه میکنیم واقعیتی رو که باید داشته باشیم داریم پس چگونه این واقعیت در ارتباطات ما مؤثر واقع میشه اگر با فیض خدا وقتی به درون نگاه میکنیم واقعیتی رو که باید داشته باشیم داریم پس چگونه این واقعیت در ارتباطات ما مؤثر واقع میشه وقتی او تعلیم میده که ارتباطات ما چگونه باید باشه در حالی که این دیدگاههای زیبا و افراد زندگی شما منتقل شده حالا برای بابشش آماده شدی چون آنچه که او میخواد بگه اینه حالا به بالا نگاه کن او این سوال رو در پایان متا باب 5 مطرح کنه. چه مزایتی بر دیگران دارید آیا متفاوت هستید آیا چیز خاصی دارید آیا اینها چیزهایی هستند که در زندگی و روابطتون نیاز به فیض دارن اگر تنها کسانی رو که به شما محبت می‌کنند دوست داشته باشید چه فیضی رو نشون میدید یا اگر تنها به کسانی سلام کنید که به شما سلام می‌کنند آیا شما مثل هر کس دیگری لیستی از دوستان دارید لیستی از کسانی که دوست دارید با آنها ارتباط برقرار کنید به خاطر کاری که برای شما انجام میدن؟ اگر شما هم تنها این بازی رو بلد هستید مثل بازیی که مردم دنیا انجام میدن پس هیچ فرقی میان شما با آنها نیست هیچ نکته خاصی در شما دیده نمیشه به عبارتی اگر تنها به دوستان خود سلام کنید چه فیضی آید اونها میشه؟ ببینید فیض میگه وقتی کسی به گونه راست شما می زنه گونه چپ خودتون نیز به اون نشون بدید. فیض میخواد آن گونه که مسیح در پایان باب 5 متا به ما تعلیم داد نسبت به شریران و دشمنان خود واکنش نشون بدیم. اونطور که مسیح در پایان باب 5 متا به ما تعلیم داد نسبت به شریران و دشمنان خود واکنش نشون بدیم. وقتی به این فکر میکنید که چگونه واقعیت این موجزه رو درون تمام روابط زندگیتون عملی کنید، دیری نخواهد پایید که خواهید فهمید برای این کار به فیزی فوق طبیعی نیاز دارید این فیز از کجا میاد؟ حال که به درون و همچنین بیرون خود نگاه کردید اکنون برای این کار آماده هستید باب شش میگه حالا به بالا نگاه کنید و از خدا فیض بیابید تا موجزهی در شما رخ بده و بتونید وقتی به اطراف خود نگاه میکنید با چنین روش های آسایی ارتباط برقرار کنید در باب شش ما کلمه بالا رو دارید قسمت اول باب شش درباره باره انزباط روحانی که باید در دیدگاه ما نسبت به بالا توسعه پیدا کنه صحبت می عیسی ایسا در چهارایه اول درباره انضباط روحانی بخشیدن صحبت می و سپس میگه وقتی دعا می کنید بگذارید به شما بگویم که چگونه باید دعا کنید. اگر می خواهید وقتی به درون خود نگاه می کنید این معجزه رو داشته باشید، وقتی به اطراف نگاه می کنید این موجز رو داشته باشید. نیاز به فیضی دارید که از دعا کردن جاری میشه و بعد در مورد روز گرفتن صحبت میکنه در هجده آیه اول باب 6 شما این سه انزبات روحانی رو میبینید ایثار کردن، دعا کردن و روز گرفتن اینها در چهار چوب نگاه ما به بالا عملی میشن ما هر کدوم رو جداگانه بررسی خواهیم کرد سپس با شروع آیه 19 تا انتهای باب شما با چیزی سر و کار دارید که میشه اون رو ارزش روحانی نامید. انزباط روحانی پاسخ و راه حل ایسا برای دنیا میشه؟ اگر قرار است که قسمتی از راه حل و پاسخ باشیم پس به انضباط روحانی در زندگی نیاز داریم. ما باید این انضباط روحانی رو همیشه داشته باشیم. تنها داشتن انزباط روحانی کافی نیست. یکی از مهمترین نکات تعلیم موعظه سر در قسمت دوم متا بابه شش هست. جایی که می توان تعلیم ایسا درباره ارزش ها رو پیدا کرد. آیا تا کنون ارزش های ایسای مسیح رو کشف کرده اید؟ ایسای مسیح یک نظام ارزشی داشت. او مجموعه ای از ارزش ها داشت. همه ما مجموعه ای از ارزش ها داریم. چالش بزرگ ما در برخورد با سر سرکوه این هست. آیا ارزش های مسیح رو داریم؟ آیا ما نیز به آنچه خدا ارزش قائله ارزش قائل هستیم؟ آیات کلام خدا به ما میگن که عیسیای مسیح رو اقرار کنیم. اقرار کردن عیسیای مسیح به چه معناست؟ به ما گفته شده که به گناهان خود اعتراف کنیم. به ما گفته شده که عیسیای مسیح رو اقرار کنیم. کلمه اعتراف در زبان یونانی یک واژه مرکب هست. این کلمه از دو واژه شباهت و گفتار تشکیل شده. در واقع به معنای یک جور صحبت کردن یا شبیه همحرف زدن یا موافقت کردن است. وقتی که به گناه خود اعتراف می کنید، فقط نمی گوید که متاسف هستید یا از اینکه در دام افتادید متاسفید کاری که انجام میدید اینه که به گناه خود نگاه می کنید و بعد با خدا توافق می کنید. شما همون چیزی رو که خدا در مورد گناهانتون میگه به زبون میارید. این سهم ما هست وقتی این کار رو می کنیم، بعد این وعده رو داریم که خدا به کلامش وفادار خواهد بود و وقتی ما به گناهان خودمون اعتراف می کنیم، و خدا رو اعتراف می کنیم او ما و گناهان ما رو میبخشه و ما رو از هر ناپاکی پاک میکنه. اما منظور از اقرار کردن ایسای مسیح چی هست؟ اینجاست که ما میفهمیم واژه اقرار کردن تنها به این نیست که بگوییم متاسفم شما نمیتونید در مورد مسیح متاسف باشید. اقرار کردن به معنای سخنگفتن همانند ایسا هست اینکه رد سخنان ایسا رو در کتاب مقدس بگیریم و به دنبال او بریم هر جا که عیسی ارزشی رو بیان میکنه، پس باید همانند او سخن بگیم ما هم باید همون چیز رو به زبان بیاریم ما هم برای آنچه او ارزش قائل میشه ارزش می‌نهیم به عنوان مثال عیسی به درون انسان اهمیت میده همون گونه که دیدیم اکثر مردم به ظاهر دیگران اهمیت میدادن برای عیسی امور روحانی مهم بودن اما برای اکثر مردم امور مادی مهمه عیسی در پایان متی باب 5 ارزش فوق‌العاده‌ای بر آگاپه یا بر محبت بلاشرط قائل شده. آیا در این مورد با عیسی هم‌رأي هستید؟ آیا شما هم همان سخنان او رو در مورد محبت میگید؟ که میگوید باید محبت خداگونه باشد، اینکه باید محبت بلاشرط باشد، اینکه نباید افراد رو صرفاً به خاطر عملکردشون دوست داشته باشیم، ما باید افراد را بلاشرط دوست داشته باشیم. اینکه باید افراد را انگونه که در اول قرنتیان 13 محبت را توصیف میکنه دوست داشته باشیم. باید این رو در ارتباطاتمون به کار ببندیم. وقتی که این را داشته باشیم به برادر و دشمن خود و جنس مخالف خود و همسر، شوهر، گناهکاران و دشمنان و همچنین همسایگان خود محبت کنیم، اون وقت به شباهت عیسی حرف میزنیم. ارزش های ایسا در کتاب مقدس پدیده خارق العاده هستند. از شما دعوت میکنم که به قسمت دوم متا باب به شش نگاه کنید و ارزش های مسیح رو پیدا کنید و بدونید قسمتی از نگاه ما به آسمان این هست که باید تا زمانی که مطمئن نشدیم ارزش های خدا و ارزش های مسیح چی هستن از نگاه کردن دست بر نداریم بعد لازمه که به مانند خدا و مسیح از اون ارزش ها صحبت کنیم و موافق اونها باشیم یک بار دیگه چهارچوب یا استراتژی این تعلیم رو به یاد بیارید. دیدگاهی دیگر در پایین کوه با اون همه مشکلات وجود داره تمام این تعالیم برای افرادی که روی کوه بودن بیان میشد افرادی که میتونستند به پایین کوه نگاه کنند و مردم رو با اون همه مشکلات ببینند تمام این تعالیم میخوان به ما نشون بدن که با فیض خدا ما قادر هستیم قسمتی از راه حل برای تمام خرابی های پایین کوه باشیم اینکه چگونه میتوانیم قسمتی از پاسخ خدا به تمام مشکلات پایین کوه باشیم وقتی به قسمت دوم متی به شش نگاه میکنیم متوجه این موضوع میشیم یکی از دلایلی که باعث شده مردم مشکلات بسیاری داشته باشند، اینه که ارزش درستی ندارن اونها ارزش خدا و ارزش مسیح رو ندارن عیسی میگه که روش انتقال دادن ارزشها اینگونه است که به پایین کوه برید و اون ارزش رو در خود آشکار کنید ارزشها بیش از آن که آموختنی باشند، کسب کردنی هستند پس باید ها رو در خود آشکار کنید به همین خاطر که عیسی 33 سال در این دنیا زندگی کرد و نه فقط یک جمعه بعد از ظهر بیاد و برای گناهان دنیا بر روی صلیب جان بده او حقیقته او حیاته او این موضوع رو به ما ثابت کرد و قسمت اعظمی از اون مربوط به ارزشهایی که او به ما نشون داد وقتی به انزباط روحانی قسمت اول متا شش نگاه نگاه کنیم اولین نکته ایثار هست. مراقب باشید که در مقابل دیگران صدقه ندهید مبادا ببینند اینها اعمال صالحه نامیده میشوند بعضی ها هم به اون اعمال خیر میگند اما اینجا هم مانند باب پنج شاهد یک تضاد هستیم تضاد میان قوانین مذهبی و آنچه عیسی انجام میداد همونطور که گفتیم قوانین مذهبی یک نوع تقوا داشتند اما اون تقوا تقوای خودشون بود نه اون تقوایی که عیسی از شاگردانش میخواست اکثر مردم گمان کنند وقتی شش پاراگراف آخر مطاب 5 پنج رو بررسی می کنیم گویی عیسی آب پاکی رو روی شریعت موسی می ریزه یا به نوعی میخواد بگه که بهتر از موسی هست اما همون گونه که دیدیم عیسی این کار رو نمیکنه او در حالی که تعلیم متا باب پنج رو بیان می کرد داشت می گفت هر چیزی که من تعلیم میدم بر طبق کتاب مقدسه اما نباید با قوانین مذهبی توافق داشته باشه با روشی که اونها کتاب مقدس رو تعلیم میدن، روشی که اون رو تفسیر میکنن، روشی که اون رو به کار میبرن، من با اون موافق نیستم. اما چیزی که تعلیم میدم با روح کلام همخانی داره. با هدف کلام، اصول کلام، با آنچه خدا با گفتن این آیه در قلبش هست. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمانی هرگز داخل نخواهید شد. وقتی به باب شش میرسیم در واقع به مرکز این تعلیم میرسیم زیرا که او واقعا میخواد تضاد میان ادالت شاگردان و عدالت رهبران مذهبی رو نشون بده برای ما درک این موضوع دشواره، اما افراد شریعتی، کاتبان و فریسیان رسم داشتند که اصرها به گوشه و اطراف خیابونها برند زمانی که خیابونها شلوغ بودند و شیپور کوچکی رو که معمولا زیر عباشون داشتند. اون رو مینواختند وقتی جمعیت برمیگشتند که ببینند صدا از کجا میاد اونها در مقابل چشم مردم آشکارا سکه ای رو درون ظرف گدایان میانداختند به اونها نگاه میکنه و میگه ای ریاکار این واژه به معنای چهره دروغین یا صورتک هنرپیشه هاست ریاکار در تئاتر یونانی یک هنرپیشه بود اونها برای ایفای نقشی که داشتند ماسکی به صورت می میزدند یک چهره دروغی، کلمه ریاکار یا هیپوکریت در واقع بدین معنا هست. عیسی در واقع میگه در حالی که میبینه سکه پس از نواخت شدن شیپور در اون زرف گدا انداخته میشه میگه انگیزه برای هدیه دادن تنها این بود که مردم اون رو ببینن تا مردم فکر کنن که دهندگان خیلی سخاوتمند هستند. علت این که اونها سکه رو در ظرف گدایان مینداختن، این بود که مورد احترام مردم واقع بشه. خب انسان ها اونها رو می و اگر این انگیزه برای هدیه دادن بود پس پاداش به طور کامل دریافت شده بود چون که تنها پاداشی که می همین بود تنها احترام انسان ها رو می خواستن. می خواستن مردم ببینن که اونها هدیه میدن و فکر کنن که چقدر سخاوتمند و پرهیزکار و خوب هستند. اونها پاداش خود رو دریافت می چون این رو می خواستن. و پاداش به طور کامل دریافت می شود. اما عیسی در متاشش میگه میگه این یک ادالت ریاکارانه است. ادالتی که من میخوام شما داشته باشید ریاکارانه نیست. ادالت شما باید واقعی باشه. و ادالت واقعی مثل اون افقی نیست. این ادالت برای انسانها و در مقابل انسانها نیست. برای این نیست که مردمون رو ببینن تا از اونها احترام و تشویق ببینن. این یک ادالت افقیه. عیسی میگه ادالتی که من از شما میخوام ادالتی عمودی هست. هدیه دادن شما باید برای خدا باشه و نه برای انسانها. پس وقتی هدیه میدهید نیازی نیست کسی ببینه که شما هدیه میدی. در حقیقت عیسی گفت وقتی هدیه میدهید حتی دست چپ شما از دست راست شما خبردار نشود. عیسی چه تعلیم زیبایی در اینجا میده. مسلا ما نمیتونیم این فریسیان و کاتبان رو درک کنیم که شیپور می‌نواختند و در گوشه و کنار خیابان‌ها این کارهای مسخره را انجام می‌دادند اما می‌خوام بدونم که اگر موضوع کاربورد مطرح بشه آیا ما همچنین اشتباهی رو مرتکب می‌شیم گفته شده که خارق‌العاده‌ترین تجربه‌ای که می‌تونید داشته باشید اینه که بدون اینکه اسم شما فاش بشه هدیه‌ای بدید و بعد از اون هویت دهنده مشخص بشه چرا مهمه که هویت هدیه‌دهنده فاش بشه به این خاطر که ما هنوز هم همون دیدگاه شریعتوار فریسی رو داریم. ادالت ما در هدیه دادن هنوز هم کیفیت افقی داره نه عمودی من تعجب می کنم که به عنوان یک شبان بارها شده که افراد مخصوصاً زمانی که میخوان هدایای کلانی بدن اون رو مثل همیشه و مانند هر کس دیگه در جعبه هدایا نمی دازن. بلکه اون رو به شبان ایمیل میکنن چون میخوان که شبانانشون بدونن که این هدیه رو اونها دادن. من وقتی چنین اتفاقی میفته ناامید میشم چون باعث میشه فکر کنم که این افراد نیاز دارن که در زمینه هدیه دادن بیشتر رشد کنن مخصوصا زمانی که به ادالت ارتباط داره اینکه نفس کار افقی هست یا عمودی هدیه دادن باید برای خداوند باشه و نه برای ها من این درس رو در اولین کلیسایی که شبانی کردم آموختم من کلیسایی رو در یک خانه سفید کوچک آغاز کردم اولین روز تقریبا 20 نفر حضور داشتند همسر من در بیمارستان بود و به خاطر بارداری فرزند اولم حالش بسیار بد بود دکترها نمیتونستند با اطمینان به من بگن که آیا او می میتونه زایمان خود رو با موفقیت انجام بده یا نه وقتی زمان اون رسید که اولین خودم خودمو انجام بدم اولین یک شنبه در اون کلیسای خانگی کوچک همسرم منو تشویق کرد که برم و من هم رفتم در تمام طول مسجد به طرف کلیسای کوچک که با بیمارستان مقداری فاصله داشت شرید با این افکار به من حمله کرد که چه آدم نادانی هستم که با ایمان می‌خواهم شبان عدی باشم که اصلا به نظر نمیرسید که استطاعت اون را داشته باشند که من و همسرم را حمایت کنه من هیچ وقت فراموش نمی کنم که از شخصی که قرار بود حسابدار کلیسای کوچک ما باشه خواستم در پایان روز روی یک تکه کاغذ به من نشون بده که چقدر هدایا جمع شده نه اینکه هرکس هر کس چقدر داده بلکه کل مبلغ چقدر بوده. وقتی او پس از جلسه صبح اون کاغذ رو به من نشون داد مبلغ زیادی پول بود. هیچ وقت اون رو فراموش نمی کنم. به اون نگاه کردم. او تحصیلات درست حسابی هم نداشت. گفتم گمان می کنم مبلغ رو به درستی جمع نزده ای. این مبلغ خیلی زیاده. او لبخندی زد و گفت نه قربان. بیشتر این مبلغ رو اون خانم مؤمنی که در ردیف آخر کلیسا نشسته بود هدیه داد. من در سردر ورودی اون خانه ایستاده بودم که اون زن مؤمن موسن بیرون اومد و در حالی که دستانش رو می میفشردم گفتم میخوام به خاطر هدیه عالی که در جعبه هدایا انداختید از شما تشکر کنم. او به من نگاه کرد و گویی که عصبانی شده باشه گفت من نمیدونم که چطور فهمیدید. من اون پول رو به شما ندادم. من اون رو به خدا دادم. و این مسئله به شما ارتباطی نداره و با گفتن این جمله روی پاشنش چرخید و از در خانه بیرون رفت. من به عنوان یه شبان جوان هم توبیخ شدم و هم بنا. من چیزی از او یاد گرفتم. وقتی مردم هدیه میدن، هدیه اونها برای خداست، نه برای انسانها و حتی نه برای شبانها. اون چه میدن، بین خود اونها و خداست. این همون چیزیه که مد نظر عیسی بود وقتی گفت وقتی هدیه میدهید، دست چپتان از دست راستتان باخبر نباشد بلکه باید به خدا هدیه بدهید. بر اساس کتاب مقدس هدیه دادن یک انضباط روحانی مهم است. هنگامی که به عنوان یک شبان در اونجا مشغول به خدمت شدم، یادمه که به همسرم گفتم هرگز درباره پول موعظه نخواهم کرد. من این تصمیم رو گرفتم چون داستان‌های زیادی شنیده بودم درباره خانواده‌ای که خیلی تلاش کردند تا پدر رو به کلیسا بیارد. و درست در همان روزی که او به کلیسا اومد، باز درباره پول صحبت کرد برای همین قسم خورده بودم که هیچگاه این کار رو نکنم اما باید از اون عهد ناپخته ای که اون روز با خودم بستم باز میگشتم چون با مطالعه کتاب مقدس و شبانی افراد متوجه شدم که سلامتی روحانی افراد مستقیما به وفاداری آنها در هدیه دادن ارتباط داره هدیه دادن یک انضباط روحانیه. وقتی افراد اونطور طور که باید هدیه میدن خدا اون رو برکت میده اونها را از نظر روحانی برکت میده. من معتقد نیستم که اونها لزوما از نظر رفاه مالی برکت پیدا کنن اعتقاد ندارم که همیشه اینطور باشه. در سختترین مناطق این دنیا، جاهایی که مردم آزادی مذهبی ندارند، گاهی اوقات مردم به خاطر هدیه دادن حتی به زندان میفتن همیشه اینطور نیست که ما در رفاه مالی باشیم چون هدیه میدیم. اما خدا از نظر روحانی به افراد برکت میده چون اونها هدیه میدن. و اگر اونها در هدیه دادن وفادار نباشند ثروت واقعی برکات روحانی را رو از اونها دریق خواهد کرد اگر ارزشهای عیسی مسیح را بررسی کنید و ببینید که او در لغا باب 16 در مورد نظارت تعلیم میده میبینیم که این تعلیم نه تنها پول بلکه زمان انرژی و عطایا و استعدادها و تمام چیزهایی رو که زندگی انسان را شکل میده دربر بر میگیره اگر بشنوید عیسی داره به ما میگه آنکه در چیزهای اندک امین باشد در چیزهای زیاد هم امین خواهد بود و اگر در پولی که از بیرون به دست می امین باشید خدا سروتهای حقیقی را به شما خواهد سپرد اما اگر در این زمینه ها امین نباشید سپس از نظر روحانی ورشکسته خواهید شد این همون چیزیه که او به طور خاص در لغا باب شانزدهم تعلیم می ده. اگر اون درست باشه و من متقاعد شدم که درسته پس به عنوان یک شبان که مسئول سلامت روحانی افراد هست چطور میتونم که هرگز در مورد موضوع نظارت صحبت نکنم؟ هیچگاه از پول صحبت نکنم اما میشه از زمان، انرژی و استعداد زندگی صحبت کرد؟ در اکثر فرهنگ های دنیا پول را خرج میکنند تا زمان و انرژی رو ذخیره کنند. پس این موضوع در کتاب مقدس بسیار مهمه پول ما و نظارت وفادارانه ما بر پول که نشان میده ما چگونه وقت، انرژی و حتی استعداد خود رو صرف کرده ایم. پس هدیه دادن بر طبق کتاب مقدس یک انضباط روحانی هست و خیلی مهمه که وقتی انضباط هدیه دادن رو اجرا می کنید بدونید که باید عمودی باشه و نه افقی ما باید به خداوند هدیه بدیم. و به کسی هم ارتباطی نداره که ما چقدر میدیم اگر بخواهیم اون رو به دیگران مربوط بدونیم پس به نظرم هنوز جا داره که در زمینه ادالت عمودی رشد کنیم آیه آغازین متا شش 6 یک جمله کلی هست. سپس در ادامه فصل مو به مو به اشکال مختلف به کار میره اما جمله آغازین این هست. زنهار ادالت خود را پیش مردم به جامعه آورید تا شما را ببینند این همون مفهومی هست که وقتی عیسی انضباط روحانی هدیه دادن و دعا کردن و روز گرفتن رو تعلیم میده باید الگو قرار داده بشه و در تمام این سه انضباط روحانی تأکید بر روی این حقیقت است باید عمودی باشه و نه افقی برای خدا باشه و نه برای انسان وقتی به انضباط روحانی هدیه دادن نگاه میکنیم دوست دارم از شما دعوت کنم که این موضوع رو در کل کلام دنبال کنید و ببینید که چه انضباط روحانی میتونه باشه. خدا به ذره ای از تعهد ما هم نیاز نداره، اما ما انجام میدیم. یکی از راه که خدا معیاری برای اندازگیری برای ما فراهم کرده، اینه که بدونیم تا چه حد به او متعهد هستیم. انزباط روحانی هدیه دادن هست. آیا میتوان گفت خدا در زندگی من اولین نفر هست؟ من هیچ خدایی غیر از او ندارم، اما او نمیتونه ذره ای از این پول من رو داشته باشه؟ مسلما این امکان نداره. ده یک میاری برای اندازه گیری قرار داده شده تا افراد بدونن که آیا خدا اولین شخص در زندگیشون هست یا نه ؟ ده یک فقط یک دهم ده انوار نیست، بلکه اولین یک دهم ده هست، اما همان گونه که میبینیم هدیه دادن بسیار مهمتر از ده یک دادن هست. هدیه دادن شاخص مهمی در وضعیت روحانی ما هست، به همین خاطره که وقتی عیسی درباره نگاه به آسمان، و انذابات روحانی تعلیم میده اولین چیزی که به اون اشاره میکنه هدیه دادنه هدیه دادن عمودی هدیه دادن به خداوند هدیه دادن در مقابل خداوند هدیه دادن زندگیمون و تمام چیزهایی که نماد زندگی ما هستند به خداوند عزیزان آیا خدا رو در زندگیتون در اولویت قرار میدین بخشش شما برای خداوند چگونه است آیا شما اصول دادن به خداوند رو یاد گرفتین؟ اگه یاد نگرفتین، امروز میتونه روز اولی از یک زندگی خارق العاده فعال روحانی برای شما باشه و یاد بگیرید که خدا رو در اولویت قرار بدید تا همونطور که عیسی به شاگردانش تعلیم میداد به دیگران هدیه بدین و اونها رو شریک خودتون بکنین. یادتون باشه در هر چیزی که خدا به شما سپرده مباشر خوبی باشید. انرژی، مهارت و بله، حتی منابع ما. من امروز با درس امروز به چالش کشیده شدم و مطمئنم که شما هم به چالش کشیده شدین. ترتیبه بدید که در جلسه آینده هم با ما همراه باشین و بذارید یادآوری کنم که برای دعوت از دیگران برای پیوستن به ما در دانشکده کوچک کتاب مقدس هرگز دیر نیست. حالا تا برنامه دوباره خداوند و منجه ما قلب های شما رو محافظت کنه و شما رو تشویق کنه که به اون اعتماد کنید و هر روز وفادارانه از اون پیروی کنید. امیدواریم وقتی فیض اون رو با دیگران قسمت میکنید آرامش و امید اون شما رو لبریز کنه.